پنجه با شیر زدن و مشت بر شمشیر کار خردمندان نیست جنگ و زورآوری مکن با مست پیش سرپنجه در بغلن دست